قصل پنجم کلاه قرمزی کوزیمو خورده خورده به جزئیات بسیاری درباره او دست یافت. بچه های ولگرد این نام را به دخترک ویلانشینی نشینی می دادند که بر اسب تاتوی سفیدی سوار می شد و بی هیچ ترسی بادار و دسته ی دوستی می کرد برای مدتی از آنان پشتیبانی کرده بود و از آنجا که فرمان دادن را دوست می داشت تا میشد گفت که سرکردشان بود. سوار بر توی سفیدش از راه ها و کوره راه ها میگذشت و با دیدن میوه های رسیده در باغ های بینگهبان بچه ها را خبر میکرد. سپس سوار بر اسب و با شیپوری آبیخته گردن همانند افسری عملیات حمله را همراهی میکرد. در حالی که بچه ها به جان درختان بادام یا هلو می او روی پشتهای به پاسداری می و با دیدن کوچکترین حرکت مشکوکی از سوی کشتگران و روستاییان شیپورش را به صدا در می آورد. بچه ها با شنیدن این صدا از درختها پایین می پریدند و می گریختند. از همین رو تا زمانی که دخترک به آنان بود، هرگز قافل گیر نشده بودند. درست روشن نبود که پس از آن چه شد. خیانتی که کلاه قرمزی در حق آنان روا داشته بود، بسیار بقرنج می نمید. او یا بچه های میوه دوز را برای میوه خوری به باغ خودش کشانده و سپس خدمتگاران را به جانشان انداخته بود. از سوی دیگر به دو تن از بچه ها همزمان علاقه نشان داده بود. که یکی از اینان اوگوگنده و دیگری لوری و خوشگله بود. که هنوز هم به این خاطر دستش میانداختند. سپس هر دوی اینها را به دشمنی با یک برانگیخته بود. به ای که شاید کتکی که بچه ها از خدماتکاران خورده بودند برای میوه دزدی نبود، بلکه به این خاطر بود که دو دل داده ی حسود سرانجام با هم متحد شده به خانه ی دخترک یورش برده بودند. هنوز از شیرینی تعریف می که دخترک بارها قولش را به آنان داده و سرانجام برایشان برده بود. شیرینی چنان آقشته به روغن کرچک که همه ی بچه ها را یک هفته به اسهال و دلپیچ انداخت. یکی دوتا از این گونه کارها و یا شاید مجموعه آنها سرانجام مایه دشمنی و جدائی کلاه قرمزی و دسته ی بلگردان شد. هنوز هم بچه ها با لحنی آمیخته از کینه و حسرت از او سخن می گفتند. کوزیما سراپا گوش بود. انگار که با هر کدام از تعریف های بچه ها که برای او نیز آشنا بود روشند میشد. سرانجام پرسید؟ خانه این کلاه قرمزی کجاست؟ اهه؟ یعنی میخواهی بگویی که نمی شناسیش؟ همسایه است. مال ویلای ریوالونده است؟ بدیهی است که پیش از آن لحظه نیز، کزیمو دریافته بود که کلاه قرمزی همان دخترک تاب سوار است. به گمان من انگیزه برادران برادرم در کوشش برای یافتن دسته میوه دوستان، درست همین بود که دخترک از دوستی با آنان لاف زده بود. اما از آن لحظه به بعد، احساس گنگی که او را آزار می داد، هرچه گزنده تر شد. گاه این خیال را در سر می که دسته کودکان را به یورش به درختان ریوالونده برانگیزد و گاه میخواست به خاطر دخترک با ولگردان در حتی اگر لازم می شد بچه ها را برمی تا ویولت را به تنگنا اندازند تا سپس خودش بتواند به به دفاع از او به میدان بیاید. گاهی نیز به فکر انجام شیرین کاری هایی که تعریف آن سر انجام به گوش دخترک می رسید. انچنان سرگرم این که در همراهی با بچهها هر چه تنبل‌تر و بیاعتناتر میشد. و هنگامی که همه میرفتند و او بالای درخت تنها پرده ای از اندوه چهره‌اش را فرا می‌گرفت، چون ابری که خورشید را بپوشاند. سپس ناگهان آرام میشد، به چابکی گربه شاخه ها را می پیمود و از باغ‌ها و باغبچه‌ها میگذشت زیر رب آواز میخواند آواز خواندنش حالتی عصبی داشت، تقریباً بی‌صدا بود. چشمان خیره اش روبرو را مینگریست انگار چیزی نمیدید چون این می بود که چون گربه به یاری غریزه ویژه‌ای تعادل خود را بالای شاخه ها حفظ می میکند چندین بار او را با همین حالت شگرف در لابلای شاخه های باغمان دیدیم هر بار فریاد می زدیم آمد آنجاست زیرا هر چه میکردیم باز همه فکرمان پیش او بود حساب ساعتها و روزهایی را که در باغ خودمان میگذران داشتیم و پدرمان پیاپی می دیوانه است. شیطان به جسمش رفته. سپس با کشیش فوشلافلور در می افتند. باید شیطان را از جانش بیرون کشید. منتظر چه هستید؟ با شما هستم جناب کشیش. چرا دست روی دست گذاشته اید؟ بچه ای من جنی شده. میفهمید جنی! کشیش انگار ناگهان از خواب می پرید. نام شیطان مجموعه به هم پیوستی از برداشت‌های بسیار مشخص را در ذهنش تدائی می کرد. آنگاه به بحث اجتهادی بقرنجی درباره چگونگی تعویل صحیح مقوله حلول شیطان می‌پرداخت. آیا می‌خواست با پدرم مخالفت کند یا تنها قصدش این بود که مسائلی کلی را بیان کند؟ هرچه بود در این باره که رابطه‌ای میان برادران و شیطان ممکن باشد و یا اصولا امکان نداشته باشد چیزی نمی‌ بارون بیتابی می کرد کشیش رشته سخن را از دست میداد و من حسلم سر میرفت مادرمان حالتی درست عکس ما داشت نگرانی او که در آغاز هاات در آور بود مانند همه احساس دیگرش اندک اندک آرامش می آفت و جای خود را به تصمیم هایی عملی برای یافتن راه چاره میداد یعنی همان کاری که هر ژنرالی برای رفع نگرانی های خود میکنه در نتیجه دوربینی را که نمیدانم از کجا پیدا کرده بود روی ایوان خانه امان و بر ای سوار می‌کرد و ساعتها چشم به عدسی آن می چسبند و لابلا شاخ و برک ها را تماشا میکرد تا بچهش را ببیند. و حتی زمانی که ما مطمئن بودیم برادرم از میدان دید او بیرون رفته است همچنان در حال تنظیم دوربین بود. پدرمون از باغداد داد زد می خودش زیر درخت‌های با قدم میزد و تنها زمانی می‌توانست کزیمو را ببیند که درست بالای سرش بود. ژنرال با حرکت دستی به ما می‌فهماند که دارد کزیمو را می‌بیند و از ما میخواست ساکت شویم. انگار که داشت پیشروی نیروهایی را بر فراز تپه تماشا می‌کرد. گاه روشن بود که هیچ چیز نمی‌بیند. اما نمیدارم چه اصراری داشت که دوربین را رو به جهت مشخصی بگیرد و انتظار داشته باشد برادرم در همانجا دیده شود با این همه گاهی پیش خود اعتراف می کرد که اشتباه کرده است این بود که چشم از دوربین بر می داشت و به بررسی نقشه ناحیه می پرداخت که روی زانویش پهن بود یکی از دستانش را با حالتی تفکرآمیز روی لبهایش میگذاشت و دست دیگرش روی نشانه های نقشه میدوید تا به نقطه ای می رسید که پسرش احتمالا آنجا بود آنگاه محاسبه ای می کرد. دوربین را به سوی نوک یکی از درختان آن اقیانوس شاخ و برگ می گرفت و آهسته آهسته آهست آن را میزان می کرد. از لبخندی که بر لبان لرزانش می نشست می که بله او را دیده است. آنگاه پرچمهای رنگارنگی را از کنار سپای بر و آنها را یکی پس از دیگری با آهنگی موزون به حرکت در میآورد. انگار علامتهای قراردادی را مخابره میکرد. در آغاز با دیدن این منظره نوعی کینه به او حس کردم. نمیدانستم که مادرم چون این پرچم هایی دارد و چگونگی به کارگیری آنها را می‌داند. افسوس که بازی با آنها را به ما نیا بود. به ویژه هنگامی که کوچک بودیم. اما مادرمان هیچ کاری را برای بازی نمی‌کرد و دیگر هیچ امیدی نمی‌شد به بوداشت. باید بگویم که با همه آن تشهیزات رزمیش همچنان مادر بود. و دلشوره و بیتابی همه مادران را داشت. میشد گفت که با آن ژنرال بازی میکوشد خود را آرامش دهد یا اینکه آن اداهای سپاهیانه دستاویزی است که نمیگذارد رنج و قصه از پدرش آورد. در نهایت زن ضعیفی بود و تنها ابزار دفاعی که داشت همان ژنرال بازی بود که از فون کوртеویتز به ارث برده بود. یکی از روزها همچنان که چشمه دوربین دوخته بود و پرچم هایش را تکان میداد ناگهان چهرهش از هم باز شد. خندید. فهمیدیم که کزیما به او پاسخ داده است. چگونه؟ نمیدانم شاید کلو هش را تکان داده یا شاخه ای را جنبانده بود. از آن لحظه به بعد حالت مادر دگرگون گرگون شد و ترس و نگرانیش از میان رفت. برای هر مادری بسیار سنگین است که فرزندی چنین شگرف داشته باشد. فرزندی که همه احساس یک زندگی معمولی را یک پارچه به دور اندازد. اما مادرمان سر انجام بران شد که کزیمو را همان گونه که بود بپذیرد و این را بسیار زودتر از ما کرد. بران شد که به همان سلامی که او گهگاه و به گونه ای به او میداد و به همان پیام های که برای هم می فرستادند بسنده کند. شگفت این است که مادرمان حتی یک لحظه هم دوچار این پندار نشد که کازیمو به خاطر سلامی که به او داده بود بران شده باشد که به میان ما برگردد اما پدرمان برعکس همواره این امید را در دل می‌پروراند با هر دگرگونی رفتار پسرش به تب و تاب می‌افتاد و میگفت؟ دیدید نگفتم پر می گردد. اما چون این می‌نمود که مادرمان با آنکه بیش از همه ما با کازیمو تفاوت روحی داشت تنها کسی است که توانسته است او را همان گونه که هست بپذیرد. شاید به این دلیل که در پی توجیه او نبود. اما به هنگامی برگردیم که کزیمو برای نخستین بار آشنایی نشان داد. باتیستا که هرگز روی ایوان نمیرفت ناگهان خود را به پشت سر مادرمان رساند و با حالتی مهرامیز بشخابی را که نمیدانم چه خوراکی در آن بود بلند کرد و قاشقی را هم به هوا گرفت و داد زد، هی hey, کازیمو، میخواهی؟ با یک سیلی پدرمان برگشت و به خانه رفت. خدا میداند باز چه معجونی پخته بود. برادرمان ناپدید شد. از هنگامی که در عملیات بچه های شرکت میکرد، بی دلم میخواست دنبالش بروم. حس میکردم دروازه های سرزمین نوینی را به روی من میگوشاید. از من میخواهد که هر بدندیشی و بزدلی را به کناری بگذارم و یک پارچه خود را تسلیم آن جنبش شور و همبستگی بستگی کنم. پیاپی میان ایوان و پنجره کوچکی در بالاخانه در رفته آمد بودم. پنجره که از آن میشد فراتر از نوک شاخسار را تماشا کرد. آنجا می نشستم و سراپا گوش می شدم تا آوای یورش کودکان را به باگ بشنوم. ج بیدن نوک درختان گیلاس را تماشا می کردم. دستی دی شاخه ها میخزید میوه ها را میکند سری جولیده یا گونی پوشیده بیرون می آمد گاهی صدای کوزیمو را از میان حیاهو می شنیدم و از خود میپرسیدم چطور خودش را به آنجا رساند همین الان توی باغ خودمان بود یعنی از سنجاب هم چابکتر است به یاد دارم که در باغ آلو سرخ بالای آبگیر بزرگ بودند که صدای شیپوری بلند شد هیچ اعتنایی به آن صدا نکردم چون نمیدانستم از کجا میآید. اما برادرم به بهها گفت که آنان با شنیدن صدا خوشکشان زد. از اینکه دوباره آن را می چنان چونان شگفت زده شدند که فراموش کردند آن صدا هش است. تنها از خود میپرسیدند که آیا درست شنیدند؟ آیا کلاه قرمزی دوباره سوار بر تا توی خود به راه افتاده تا آنان را از خطر آگاه کند؟ به یک بار همه ناپدید شدند اما نمی گریختند. به دو میرفتند تا خود را به دخترک برسانند. کوزیمو با چهره‌ای برافروخته برجا ماند. اما همین که دانست بچه‌ها به کجا رفتهاند خیزی برداشت و بی‌اعتنا به هر خطری شاخه ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. ویولت پیچ پرشی بی ایستاده بود. دهانه را به دستی گرفته و دست خود را روی یال اسب گذاشته بود. نگاهی گذرا به همه بچه ها و شلاقش را به دندان می گزید. آبی به داشت شیپوری تلایی با زنجیر نازکی به گردنش آویخته بود. بچه ها همه ایستاده بودند و آنان نیز هر کدام چیزی را به دندان میگزیدند. آلویی یا انگشتی یا زخم روی دست یا بازویی یا لبه گونی. و از دهانشان آرام آرام زمزمهی ناباورانه بلند شد. نجوایی آهنگین و آوازگونه که شاید تنها برای این بود که به آن لحظه های رنجاور پایان دهد با این انتظار که شاید آنچه به چشمی آید حقیقت نداشته باشد اینجا چه کار میکنی کلاق قرمزی؟ دیگر با ما میایی؟ تو دیگر دوست ما گل ما نیستی؟ طول سک دیگر حرفهایت را باور نمی کنیم. شاخه ها جنبید و صدا کرد و کزیما نفس نفس زنان از لابلای برگ های بارای یک انجیر تناور سر بیرون آورد. دخترک شلاق به دهان نگاهی به او انداخت. سپس با همان سر افراشته و نگاه خرد کننده بچه های دیگر را ورانداز کرد. کزیما بیش از آن تاب نیاورد و نفس باخته گفت. میدانی از آن روزی که هم دیگر را دیدیم پایم به زمین نرسیده. کارهای برجسته‌ای که آدمی به پیروی از وسوسهای درونی می‌کند باید ناگفته بماند همین که آن را به زبان بیاوری و از آن لاف بزنی چیزی بیهوده و بیمعنی جلوه می‌کند و پست و بیمقدار می می‌شود برادرم هنوز گفته خود را پایان نبرده از آن پشیمان شد کاش هرگز آن را به زبان نیاورده بود دیگر همه چیز برایش بیارزش شد به راستی درش خواست از درخت پایین بیاید و کار را تمام کند از همه بدترین که ویولتا آهسته آهسته نوک شلاق را از دهان بیرون آورد و با لحنی دوستانه گفت. جدی میگویی؟ عجب خولی هستی؟ خنده ای در گلوی بچه های ترکید که سپس طوفانی از قهقه شد که تکانشان میداد و رود برشان میکرد. کوزیما بالای درخت انجیر چنان از خشب بر جا جهید که شاخی ترد زیر پایش تا به او را نیاورد و شکست و بارون آینده چون قلب سنگی پایین افتاد. با بازوان از هم گشوده پایین افتاد بیان که دست خود را به جایی بند کند. به درستی میتوان گفت که این تنها بار در زندگی درخت نشینیش بود که نه خودش خواست و نه قریزش یاری کرد که نیفتد. اما لبه بالا پوشش به شاخهی در پایین درخت گیر کرد و کوزیمو در چند وجبی زمین سرنگون ماند. تنها فکره که به سرش زد در همان حال که با چشمان از هم دریده تصویر واشگون دخترک موبور را سوار بر اسب کتولهی می دید که روی دو پا شده بود و بچه های که پس از دیگری پشتک می زدند و در چشم او به وضعیت طبیعی بر می گشتند و چون این می نمود که از دنیا آویزانند، تنها فکری که به سرش زد این بود که همان ناخوشایند بار و این باری نیز خواهد بود که از درخت نشینیش چیزی به زبان آورد. کوششی کرد و به وضعیت طبیعی برگشت و روی شاخه نشست. ویولتا را آرام کرده بود و چنین مینمود که صحنه پیشین را ندیده است. کوزیمو نیز سرگشتگی چند لحظه پیش خود را فراموش کرد. دخترک شیپور را به دهان برد و آن را به نشانه هشدار به صدا درآورد. بچه ها با شنیدن صدا پا به فرار گذاشتند. کوزیما بعدها به این نکته پی برد که حضور دخترک به گونه غریبی بچه ها را بیتاب و از خود بی خود می کرد. همانگونه که مهتاب مایه ناآرامی خرگوش وحشی می شود. کودکان به خوبی می که ویولتا برای شوخی شیپور را به صدا در است. گریختن آنان نیز برای بازی بود. از سراشی پایین می و از خود صدای شیپور در می اسب به با پاهای کوتاهش پیششا آنان میتاخت کودکان سر را پایین انداخته بودند و ک میدویدند از همین رو گهگاه ویوللت را گم میکردند و او از جاده بیرون زده و رفته بود. رهایشان کرده بود؟ چرا ؟ به تاخت از کیسارهای کمشی به میان درختان زیتون ته دره میگذشت و درختی را جستجو میکرد که کزیمو بینبا در آن هنگام خود را به زحمت رسانده بود همچنان به تاخت درخت را دور میزد و میگریخت و لحظه ای بعد پای زیتون دیگری دیده می شد که کزی و بالای آن بود بدین گونه اون نیز راهی به پیچیدگی راه برادرم را پیمود و هر دو با هم از در پایین رفتند هنگامی که ولگردان به بازی سراسر تاخت و شاخ نوردی آن دو پی بردند همه با هم به حالتی ریش خندامیز سوت زدند. و همچنان که به سوی دروازه انجیرک می رفتند، صدای سوتشان هرچه بلندتر می شد. دخترک و برادرم تنها ماندند و همچنان به دنبال کردن یکدیگر در زیتونستان پرداختند. کوزیمو با ناراحتی دریافت که پس از رفتن دسته ولگردان دخترک علاقه کمتری به بازی نشان می دهد و کم کم سر می رود. از این رو حد زد که شاید انگیزش از این بازی تنها این بوده است که دیگر بچه ها را خشم کند در همان زمان این امید به دلش نشست که شاید اکنون تنها انگیزه دخترک این باشد که خود او را به خشم اندازد. شکی نبود که دخترک برای جلب توجه دیگران همواره نیاز داشت کسی را از خود برنجاند و خشمگین کند. البته کازیمو که پسر بچه بیش نبود، از این گونه احساس‌های پیچیده تنها برداشتی گنگو ناشناخته داشت. از همین رو شاخه‌های زبر درختان را با بیخیالی یک پرنده پشت سر میگذاشت ناگهان از پس پشته بارانی از سنگریزه باریدن گرفت. دخترک سر خود را پشت گردن تاتو پنهان کرد و گریخت. برادرم که روی شاخه ستبری ایستاده بود و به خوبی به چشمی آمد آماج آن رگبار شد. اما پرواز سنگریزه ها تا به او برسد کج می شد و آسیبی به او نمی رسند. با این همه چند تایی از آنها به پیشانی و گوشهایش خورد. بچه ها چموشانه سوت می زدند و یک صدا می گفتند کلا قرمزی بی سپس رفتند و ناپدید شدند. دسته بچه ها به دروازه انجیرک رسید. جایی که پیرامونش پوشید از انبوه بوته های سرسبز انجیرک بود. از زاغه های نزدیک آنجا سر و صدای مادرهایشان بلند شد. کودکانی چون آنان را بدین خاطر سرزنش نمی که چرا دیر به خانه می رفتند. بلکه چرا به خانه می رفتند؟ چرا برای چاشت به خانه برمیگشتند و نتوانسته بودند جای دیگری چیزی برای خوردن پیدا کنند؟ توحیده از مردمان اونبروزا در کلبه ها و کپر و عرابه ها و چادر در پیرامون دروازه انجیرک زندگی می و چنان ندار بودند که به آنان اجازه داده نمیشد به که و دروازه شهر نزدیک شوند. مردمانی از سرزمین ها و کشورهای دوردست دور دست بودند. که از قحطی و بی همه جا گیر گریخت و آنجا گرد آمده بودند. هنگام غروب بود. زنانی جولیده با کودکی پستان بدهند در آغوش بر اجاغهای پردود می‌دمیدند. گدایانی روی زمین دراز کشیده بودند و زخمهای خود را باد می‌دادند. برخی دیگر با سر و صدای بسیار قاب بازی می کردند. بچه ولگر در میان آن دودها و حیاهو پراکنده شدند. سیلی های سختی از مادرانشان خوردند در موهای خود چنگ زدند و در خاک قوته ور شدند. به همان زودی ژنده پااری تنشان به رنگ همه ژنده جامعه های دیگر درآمد و شادی و سبق بالی گنجشک فارشان در میان آن معجون بشری فرو مرد و جای خود را به رخوت و درماندگی داد. بدین گونه با پدیدار شدن دخترک مبور که با اسب میتاخت و کازیمو که درختان را شاخه به شاخه میپیمود، تنها سری بلند کردند و نگاهی شرماگین به آن دو انداختند. خود را پنهان کردند، کوشیدن خود را میان دود و قبار گم کنند. انگار که ناگهان دیواری میان آنان و دو هم بازیشان کشیده شده بود. دو کودک دیگر تنها نیم نگاهی به این همه انداختند. ویولت رفت و به زودی جای خود را به حیاهوی زنها و دود کپرها داد. که با سایه های شام گاهی در و در لابلای کاج های کناری دریا پخش میشد. دریا آنجا بود صدایش از فراسوی سایه روشن میآمد که انگار تخت سنگ هایی را روی هم می قرشی از این رساتر نیز به گوش می رسید به کوچک روی قلب سنگ های ساحل می سمهایش اخ گرمی براند. برادرم از بالای کاج کوتاه و خمیده ای سایه دخترک مبور را میدید که از کناره میگذشت موج کوتاهی از دریای تیره بلند شد بلند شد و خم شد سراسر سفید شد و پیش آمد و شکست سایه دخترک و تاتو به تاخت از کنار موج شکسته گذشت مشتی از آب شور به کاج رسید و چهره کزی مرا خیز کرد